حکایت پادشاهی به دیده‌ی استحقار در طایفه درویشان نظر کرد یکی از میان به فراست بجاج به آورد و گفت ای ملک ما در این دنیا به جيش از و کمترین و به عش خوشتر و به مرگ برابر و به قیامت بهتر اگر کشور خدای کامران است و اگر درویش حاجتمند نال است، در آن ساعت که خواهند دین آن مرد، نخواهند از جهان بیش از کفن برد، چو رخت از مملکت بربست خواهی، گدایی بهتر است از پادشاهی. ظاهر درویشی جامعه ژنده است و موگ سترده و حقیقت آن، دل زنده است و نفس مرده، نه آنکه بر در دعوی نشیند از خلقی وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد، اگر زکو فروغ التداس یا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد، طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایسار و قناعت، و توحید و توکل و تسلیم و تحمل هر که بدین صفتها که گفتم موصوف است به حقیقت در ویش است گر در قباست یا هرزگردی بین نماز هوا پرست که روزها به شب آورد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب قفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید، رند است و در عباست. ای درونت برهنه از تقوا که از برون جامعه ریا داری، پرده هفت رنگ در مگذار تو که در خانه بوریا داری.